تمام آن سال حیوانات مثل برده کار کردند اما راضی بودند و از هیچ کوشش و فضاکاری مذایقه نمیکردند. چون خوب می دانستن. هر تلاشی می کنند به نفع خود و برای نسل آینده خودشان است. نه به نفع یک دست بشر دزد و تنبل در تمام بهار و تابستان ای شست ساعت کار کردند و در ماه اوت ناپل اون اعلام کرد که بعد از ظهر یک شنبه ها هم کار هست این کار طبق است اما اگر حیوانی غیبت کند جیرش می شود با این واسط از بعضی کارها صرف نظر شد. خرمند به میزان سال گذشته جمع نشد و دو مزرعه در به این دلیل که شخم زمین به موقع آماده نبود کشت نشد. پیش بینی شد که زمستان آینده زمستان سختی باشد. آسیابودی با اشکالات غیر منتظری مواجه شد. در خود مزرعه سنگاهک وجود داشت مقداری هم ماسه و سیمان از سابق در یکی از حیاتهای تابعه بود. یعنی تمام مصالح ساختمانی در دسترس بود اما مسئلهای که حیوانات در ابتدا نتوانستند حل کنند شکستن سنگ به قطعات و اندازه های متناسب بود به نظر می رسید که تنها راه شکستن سنگ ها به وسیله کلنگ و دیلم است و این کار را هم هیچ حیوانی نمی‌توانست بکند چون نمی‌توانست روی دو پای عقب بایستد پس از هفتهها کوشش بیحاصل یکی فکر بکری کرد قرار شد از قوه جاذبه زمین استفاده کند به دور سنگ های بزرگ و صاف که به دلیل بزرگی قابل استفاده نبود تناب بستند و همه حیوانات گاوها و اسپا گوسفندا و هر حیوان دیگری که تاب نگهداشتن تنابها داشت حتی در لحظات حساس خوکها آنها را به كندی معیوس ای از دامنه به بالای تپه میکشیدند و از آنجا رها میکردند تا خرد شوند همرو نقل سنگ از خرد شدن زیاد مشکل نبود از پا قطعات سنگ را در عرابه های باری حمل میکردند و گوسفندان خرد ها را یکی یکی میکشیدند حتی موریل و بنجامین خود را به عرابهی سبکی بسته بودند و سهمی در کار داشتند در اواخر تابستان مقدار کافی سنگ جمع و ذخیره شد و ساختمان تحت نظارت خوکا شروع شد اما کار کند پیش می رفت و دشوار بود بسیاری از اوقات یک روز تمام این می میشد که قطعه سنگی را بالا بکشند و تازه بعضی اوقات سنگی که از بالا رها میشد نمیشکست. هیچ کاری بدون وجود باکسر که نیرویش معادل مجموعی نیروی بقیه حیوانات بود به سمر نمی رسید وقتی که سنگ میلغزید و حیوانات میدویدند الان است که خودشان هم به پایین پرت جووند و از نومیدی فریاد و فرقانشان به هوا میرفت همیشه باکسر بود که خود را مقابل تناب نگه میداشت و سنگ را متوقف میکرد دید او که وجب به وجب دامنه را با زحمت میپیمود و نفس نفس میزد و با نوک سمش به زمین پنجه میکشید و دو پهلویش از عرق پوشیده بود منظره ای بود که هر کسی را ماله مال از تجب و تحسین می کرد کلوفر به او گوش زد می میکرد که به خود زیاد فشار نیاورد اما گوش نمیداد از نظر او دو شعار من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپل اون است جواب یه هر مسئله ای بود با جوجه خروز قرار گذاشته بود صبحا به جای نیم ساعت ربع ساعت زودتر بیدار کند. با آنکه در این روزا کمتر فراغت داشت هرگاه فرصتی پیدا میکرد به تنهایی به کنار تف سنگ می رفت و بدون کمک یک بار سنگ خورد را به نزدیک محل ساختمان هم میکرد. با وجود سختی کار وضع حیوانات در طول تابستان چندان بد نبود. اگر از زمان جونز قوت بیشتری نداشتند، کمتر هم نداشتند. این امتیاز که باید فقط غذای خود را تهیه کنند و ناگزیر نبودند پنج آدم حریس را هم سیر کنند، آنقدر مهم بود که جبران کمبودهای دیگر را میکرد. در خیلی از امور طرز کار حیوانات کاملتر و عملیتر از آدم ها بود و از میزان کار میکست. مثلا علبکنین چنان کامل صورت میگرفت که مسلمان بشقه از اوهش بر نمیآد و یا چون هیچ حیوان نمی نمیکرد دیگر حاجتی به کشیدن دیوار و جدا کردن چراگاه از زمینه کش نبود بنابراین حفظ و نگهداری پرچین و غیر لازم نبود. معهاا وقتی تابستان سپری شد کمبودهای های پیش بینی نشده ای شد نفت میخ. ریسمان، بیسکویت، آهن برای نعل اسب مورد نیاز بود، و هیچ کدام را نمیشد در مزرعه تهیه کرد. به علاوه، بذر و کود شیمیایی برای کشت لازم بود و ابزار مختلف و دست آخر ماشین‌آلات برای آسیابادی. هیچ کس نمیدانست اینها به چه باید تهیه شوند. یک یکشنبه صبح که حیوانات برای دستور جمع شده بودند، ناپلئون اعلام داشت که سیاست جدیدی اتخاذ کرده است. از این تاریخ به بعد قلعه حیوانات با مزاره مجاور داد و خواهد کرد البته نه به منظور تجارت بلکه صرفا برای به دست آوردن مواد مورد نیاز فعلا مقداری یونجه و مقداری گندم فروخته خواهد شد و بعد اگر به پول بیشتری حاجت باشد از طریق فروش تخم مرغ که همیشه در بلینگدن بازار دارد تأمین خواهد شد ناپلون اضافه کرد که مرغها باید از این فداکاری که به منظور کمک و مشارکت در امر ساختمان آسیا بادی استقبال کنند یک بار دیگر حیوانات به طرز مبهمی احساس ناراحتی کردند ارتباط نداشتند با بشر، معامله تجاری نکردند، پول به کار نبردند مگر اینها جز تصمیمات اولین جلسی فتر و زفر فتر از اخراج جنز نبود همه حیوانات این تصمیمات را به خاطر داشتند و یا لاعقل تصور میکردند که آنها را به خاطر دارند آن چهار خوک جوانی که وقتی ناپلئون جلسات مشاوره را حذو کرد اعتراض کرده بودند با ترس به صدا درآمدند ولی بلافاصله با خورش صهمگین سگها لب فرو بستند سپس طبق معمول گوسفندها چهار پا خودو پابدر را بعبع کردند و ناراحتی آنی حیوانات تخفیف پیدا کرد دست آخر اون پای جلو را به علامت سکوت بلند کرد و اعلام داشت که ترتیب تمام کارها را داده است و حایرت نیست که حیوانات با بشر تماس حاصل کنند چرا که به طور یقین نامطلوب است خود او همه بار را شخصا دوش خواهد کشید ویمپرن نامی که مشاور حقوقی و ساکن است قبول کرده که رابطه بین قلعه حیوانات و دنیای خارج باشد و دوشنبه ها صبح برای دریافت دستور به قلعه می آمد. نابل اون را طبق معمول با فریاد زنده باد قلعه حیوانات خاتمه داد و حیوانات پس از خواندن سرود حیوانات انگلیس متورق شدند بعد سکویلر گشتی اطراف مزرعه زد و خیال حیوانات را راحت کرد به آنها اطمینان داد که تا کنون تصمیمی علیه معامله و بیکار نافتن پول گرفته نشده و حتی چنین پیشنهادی هم مطرح نشده است تصور محض شاید از ذروخای سنوبال باشد ولی سکولار زیراکن از آنها سوال میکرد رفقا آیا مطمئن هستید که خواب ندیدید ای؟ آیا در این باره مدکی در دست دارید آیا این مطلب جایی ثبت شده است و چون به طور قطع در این باره نوشته‌ای در دست نبود حیوانات نیز غانه شدند که خود اشتباه کردند هر دوشنبه آی وینپر طبق قرار به قرعه می او مردی بود، شیطانندام و کوچکندام که در امور جزئی مشابره حقوقی بود، ولی به حد کافی هوشیار و موقعشناس بود که قبل از کسی تشخیص دهد قلعه‌ی حیوانات به رابط نیازمند است و حق العمل آن قابل ملاحظه است. حیوانات آمده شده او را با نوعی وحشت آمیخته به نگرانی نگاه میکردند و تا سرحد امکان از او دوری می‌جستند. با این وزد دیدن نابل اون پاه که به ویمپر امر نه می کرد قرور آنها را تحریک میکرد و نگرانی ها را تا حدی جبران می نمود رابطه حیوان و انسان مثل سابق نبود نفرت بشر نسبت به قلعه حیوانات به قوت خودش باقی بود بشر هنوز ایمان داشت که قلعه دیر یا زود به برشکستگی خواهد رفت راجع به آسیاب بادی نظرشان این بود که به جایی نخواهد رسید. آدمها در میخانه ها جمع می و با نقشه برای یکدیگر ثابت میکردند که آسیاب بادی خراب خواهد شد و تازه اگر خراب نشود قابل استفاده نخواهد بود منظالک برخلاف میل باطنی خیش برای حیوانات که قادر به اداره امور خیش شده بودند احترامی قائل بودند دیگه از بروزات این مطلب این بود که آنها به تدریج مزرعه را به اسم قلعه حیوانات میخاندن و دیگر با آن به آن مزرعه مانر نمیگفتند. به علاوه از جونز هم که دیگر امیدی به برگشت به مذره نداشت و به قسمت دیگری رفته بود پشتیبانی نمیکردند. سوای ویمپر بین قلعه حیوانات و دنیای خارج ای وجود نداشت. اما مراتب این شایعات وجود داشت که نافلان قصد دارد قرارداد قاطعی یا با آقای پلکینگدن مالک فاکس بود یا با آقای فیردریک مالک پینچفیلد ببندد ولی هیچ صحبت معامله با هر دوی آنها در آن آنباه در میان نبود همین مواقع بود که خوکان ناگهان به ساختمان مزرعه نقل مکان کردند و آنجا را اقامتگاه خود ساختند باز به نظر حیوانات رسید که روزهای اول تصمیمی جزین اتخاذ شده بود و با سکویلر توانست آنها را متقاعد کنند که چنان نبوده است. گفت خوکها ها مغزه متفکر مزعه هستند نیاز به جای آرام و دنج دارند. به علاوه مناسب باشن پیشواست در خانه ساکن باشد نه در خوکدانی. اخیرا ناپلون را با عنوان پیشوا خطاب میکرد. با تمام این مراتب بعضی از حیوانات از شنیدن اینکه خوکان نه فقط غذا در آشپزخانه صرف می‌کنند و و اتاق پذیرایی را به تفریح خود اختصاص دادن بلکه روی رویتت هم میخوابند، مضطرب و نگران بودند. باکسر طبق معمول با شعار همیشه حقبان با اون است، مطلب را درز می‌گرفت، در که فکر می فکر به خاطر دارد که تخت خواب صریحاً تحریم شده بود، به انبار رفت و سعی کرد معمای هفت فرمان را که روی دیوار ثبت بود، حل کند. ولی چون فقط میتوانست حروف منفصل را بخواند سراغ موریل رفت و گفت موریل مادهٔ چهارم را برایم بخوان. در این فرمان گفته نشده که روی تخت نباید خوابید موریل با کمی اشکال آن را خواند و بالاخره گفت این ماده میگوید هیچ حیوانی با شمد بر تخت نمیخواب عجیب بود که کلوور نتوانست به خاطر بیاورد که در ماده چهارم فرمان اسمی از شمت برده شده باشد ولی این کلمه بر دیوار ثبت بود لابد چنان بوده باشد و سکویلر که بر حسب تصادف با باسه سگ از آنجا میگذشت توانست که غذایا را روشن کند گفت رفقا البته شنیدهاید یک ما خوکها در حال حاضر روی تخت تختخواب میخوابیم و چرا که نخوابیم قطعا فکر نمیکنید که قانونی در تحریم تخت وجود دارد تخت خواب به طور ساده جاییست برای آن که بخوابند و اگر خوب دقت کنید متوجه می که مشتکاه طویله هم تخت خواب است قانون استفاده از شمت را که اختراع است دهین کرده است و ما شمدها ها را برداشته این ولای پتو میخوابیم. تختها تخت ها کاملا راحتند اما نه بر حدی که ما بعد از کارهای فکری به آن نیازمندیم رفقا مسلما شما در مقاب سلب راحتی از ما نیستید و قطعا نمیخواهید که ما چنان خسته شویم که از که مان باز بمانیم و به طور یقین هیچیک از شما طالب بازگشت جونز نیست حیوانات دوباره در این باره به وی اطمینان دادند و دیگر در اطراف خوابیدن خوکا و تخت سخنی به میان نیامد و حتی وقتی اعلام شد که خوکها از این پس یک ساعت دیرتر از سایر حیوانات از خواب برمیخیزند کسی اعتراض نکرد. در پاییز حیوانات خسته ولی خوشحال بودند. سال سختی را گذرانده بودند و پس از فروش مقداری اونجا غله زخیر غذایی برای زمستان چندان زیاد نبود اما آسیاب بادی همه را جبران میکرد. پس از برداشت خرمن چندی هوا خشک و صاف بود و حیوانات که فکر می حتی یک وجب بالا بردن دیوارهای آسیاب بادی ارزش تحمل هر رنجی را دارد بیش از پیش زحمت کشیدند باکسر حتی شب بیرون میآمد و در روشنایی ماه یکی دو ساعتی از وقت خود را صرف کار می حیوانات در لحظات فراغت دور آسیاب بادی نیمه تمام راه می رفتند استحکام و قائم بودن دیوارهای آن را تحسین می کردند و از اینکه موفق شدند چین بنایی با عظمتی بسازند در شگفت می فقط بنجامین بود که در مورد آسیاب بادی شور و شعفت به خود نشان نمیداد و طبق معمول با طرز اسرارآمیزی میگفت خرها عمر طولانی دارند ماه نوامبر با باد سختی سر رسید و کار ساختمان به علت باران متوقف شد چون امکان ساختن سیمان نبود. بالاخره شبی باد چنان سخت وزید که بناهای مزرعه از تکان خورد و از بالای بام انبار سفالی به پایین افتاد. ها وحش زده از خواب پریدند چون همه صدای تفنگی را در خواب شنیده بودند و صبح که حیوانات از جایگاه خود خارج شدند دیدند که پرچم واژگون شده است و یک درخت تنومند نارون مثل تروبچه از ریشه درآمده است و وقتی چشمشان به آسیاب بادی افتاد از فرت نومیدی از بیخ گلو فریاد کشیدند آسیاب بادی ویران شده بود همه به محل حادثه هجوم بردند و نابل آن که همیشه به قدم آهسته حرکت میکرد. پیشاپیش همه میدوید سمرهٔ تمام زحماتشان با خاک یکسان شده بود سنگهایی که با رنج شکسته بودند و هم کرده بودند در اطراف پخش شده بود زبان همه بند آمده بود با حالتی ماتم زده به قطعات سنگهای پراکنده خیره شده بودند ناپلئون ساکت قدم میزد و گاه زمین را بو میکشید دمش به نشانه فعالیت فکری زیاد سیخ شده بود و با سرعت تکان میخورد ناگهان گویی به نتیجه رسیده باشد ایستاد و گفت رفقا می مسئول این قضیه کیست؟ آیا دشمنی را که شبانه آمده و آسیاب ما را واژگون ساخته میشناسید؟ سنوال و نگهان با قرش رعداسا ادامه داد سنوال این کار را کرده است این خائن صرفا به فکر عقیم گذاشتن نقشی ما و برای انتقام جوی از اخراج شرماورش در زیر نقاب تاریکی اینجا آمده و زحمات یک ساله ما را به باد داده است رفقا همین الان و در همین محل من حکم اعدام سنوبال را صادر و اعلام میکنم نشان درجه دوم حیوانی و نیم کیلو سیب جایزه هر حیوانی است که عدالت را درباره او اجرا کند و یک کیلو سیب جاییزه کسی است که او را زنده دستگیر سازد حیوانات از اینکه موجودی حتی سنوبال میتواند تا این پای بزهکار باشد سخت متأثر شدند و فریادی از خشم برآوردند و همه به این فکر افتادند که در صورت مراجعتش به چه نهر او را دستگیر سازند تقریبا بلا فاصله رد پای خوکی در چمن پیدا شد رد پا چند متری ادامه داشت و مثل این بود که به سوراخی در پرچین منتهی می شد رد پا را بو کرد و اعلام داشت که جای پای سنوال است و گفت محتملا از سمت مزرعه پاکسود آمده است ناپل پس از امتحان رد پا فریاد کشید رفقا دیگر جای درنگ نیست باید تلاش کرد ما از همین امروز شروع به تزدید بنای آسیاب بادی می کنیم و در سراسر زمستان اهم از اینکه آفتابی باشد یا بارانی می سازیم تا به این خائن بکینت بیاموزیم که به آسانی نمی کار ما را خونتا ساخت رفقا به خاطر بسپارید که در نقشه ما نباید هیچ تغییر راه یابد و برنامه باید در سر موعد تمام شود رفقا به پیش زنده بعد آسیاب بادی پاینده بعد قلعه حیوانات.